جلسه یکی فقه سیاست هفته مهره هزار و چار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سلالله علی و سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیت تاهرین المعصومین سیم و بقیت الله فل الارضین روحی و ارواح العالمین لح الفدا با تاکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل تعدهار علیه همه السلام بحثمون رو آغاز میکنیم بحث ما در قوائد درس قواعد فقه سیاس هست طبیعتاً باید یک نگاه کلی به مقوله قاعده و قواعد داشته باشیم و ببینیم چه جایگاهی در کلان مباعث فقهی داره و یه مقداری ببینیم روش بحث از قواعد چگونه باشه تا برسیم به مواعث مربوط به قواعد و سیاسه و احیانا مواردی از قواعد رو که وصع این, جل... این کلاس باشه انشالله با انایت خدای متعال به بحث بذاریم اولین مسئله اینه که قاعده چیه و در فضای شیخ چگوناست من متنی رو خدمت دوستان ارائه میدم از عنوان نمونه از کتاب قواعد اصول فقه که جناب جای اندلیب نوشتن به عنوان مقدمه بحث قواعد اصول فقه متنای مختلف معمولا هست خب اینجا فشرده عباراتی رو هم نیاز هست این عبارات رو خدمت دوستان میخوانم حالا شاید بخوایم اسکرین بکنیم یه مقداری طول بکشه با دستگاه کند ما ای یک مفهوم یه بحث اولیه این هست که ای قاعده چیه مراد ما از قاعده چیست و بحث چگونه باید مد نظر ما قرار بگیره قاعده خوب در کتب فقهی معانی مختلفی داره در لغت هم همینطور در لغت چنان که بزرگواران مستحضر هستن عنوان اصل و اساس ذکر شده در کتاب مصباح المونی را مده قوائد البیت اصاس صح القاعده که قوائد جمع قاعده است و اساس منزل و ارکان و پایه های منزل و بیت به عنوان قواعد زک میشه راقب هم در مفرداتش همین رو اوورده و به آیه شریفم تمثل کرده و از یرفه او ابراهیم القواه در من اون اساس و ارکان منزل رو تعبیر قاعده به کار برده کسای دیگر هم رو در بحثای تفسیری و سایر موارد از جمله فخر رازی در کتابش ناظر به این بحث اوورده که القواعد و جمع و قاعده و هی الاساس و اصل ل فوقه اون ارکان و اساسیست برای چیزی که بر اون بنا میشه و روی او گذاشته میشه از جهت استلاحی در لغت و فق موارد مختلفیست یک نکته که ما مفاهیم مرتبط هم داریم یک مفهومی داریم به اسم اصل مفهوم اصل رو هم از اون برکه نگاه کنیم دوستان اگر پیام ها بله مفهوم اصل هم چند تا معنا داره یه معنای اصل قاعده است یه معناش اکثره خب از اون بر پس مفاهیم مرتبط هم داریم که برمیگرده به مفهوم قاعده یه معنای اصل قاعده است خب اینجا در معنای اصطلاحی در لغت و فقه و اصول مفهوم عام میست مفهوم کلیست که بر جزئیات منطبق میشه یعنی مصادیق متعددی داره که اون مفهوم کلی اون محتوای کلی برطی یکایی که اون مصادیق قابل انتباق هست فهو و, و اما به حسب مفهوم هل اصطلاحی فهوه علاما زکرو فل لغه و فقه ول اصول الکلی و لذی یعن طبق و جزئیاته شاید جا داشت که منطق هم ذکر بشه تو اون فضا هم ممکنه بگیم این تعبیر رو هم موقع احتمال داره به کار ببرن الکلی و لذی یعن طبق علا جزئیاته در کتاب مصباح هم یک تعبیری آمده به عنوان زابط و زابطه ولقاعده فی الاسطلاب به معنی زابط خب بعضی کسایی دیگه این رو هم به کار بردن من این عبارتی که اینجا آمده توضیح میدم بعد یک نکته هاشیهی رو هم عرض می کنم. و وحی الامر الکلی اون یک امر کلی است و عامی است که المنتبق علا جمعی جزئیاته در مصباح همین محتوى رو اووردن که اون کلیست که اون خلاصگیری که ابتدا داشتن در بعضی از این موارد رو هم اووردن یه الامرالکلی المنتبق الان جمعی جزئیاته بعد اووردن در المنجد که این در المنجد هم آمده اما میدونیم خب کتاب المنجده کتاب علمیه قابله چیز نیست حالا در ماده قاعده اونجا آمده جا نداره حالا اینجا تمسک به المنجد بشه که یک کتاب جدیده لزوما کتاب فنی محسوب نمیشه اینها رو به عنوان که در لغت آمده مثباه المنیر اینجور گفتن که مثباه المنیر گفته که معنای استلاحیش زابطه زابطه است در المنجد هم همینطور و فل اصطلاح تطلق علل اصله و قانون و ضابط بر سه مفهوم اینجا تطبیق کرده بر اصل بر قانون و ضابط خب اشاره کردم که مفهوم اصل خودش چند معنا داره معنای اکثری هست معنای اصل عملی هست یک معنای قاعده هم داره سه چهار تا معنا از قدیم در کتب فقیر اصولی شیعه و سنی برای اصل ذکر شده یه معنای اصل قاعده است خب قانون از این جهت که معمولا کلیست با اون معنای لغوی سازگاری داره مفهوم زابط هم این مقدر میتوانه با این سازکاری داشته باشه و تعرفوا به انها امر کلی ینطبق الا جميع جزئیات در لغت اشاره کردند در اصطلاح هم همون معنایی که ابتدا گفتن اینجا وجود داره یک امر کلی است که بر مسادق و جزئیاتش به کار میره ما با اجزا اینجا کار نداریم ما کل کار نداریم کل و جز خارج از بحث ماست ما یک کلی داریم که قابل تقسیم به است به اون میگیم کل و جز و اجزا اینجا ما با کلی و جزئی کار داریم خب در فضای منطق وقتی میگیم کلی یعنی یک مفهوم کلی وقتی میگیم جزئی یعنی مفهوم جزئی که است برای اون کلی و کلی قابل انتباق بر اون یک مستاق هست بر مساق دوم، در مصادیق دیگه مفاهیم ماهیات مصادیقی دارند. خب اینجا هم به الان شبیه همونه یعنی اون بحثی که در منطق وجود داره اینجا می توانیم بگیم احتباس شده در تعریف قاعده در اصطلاح. خب البته اینجا جا داشت اشاره بکنه در اصطلاح کدام دانش ما الان اینجا با اصطلاح قاعده در فقه کار داریم ممکنه در منطق در فلسفه در اصول معانی متفاوت داشته باشه چنان که در بحث اصول خواهیم رسید اما فیل جمله این مشابهت وجود داره و مرحوم فخر المحققین قال فخر المحققین فی ایزاه الفواهات. ول قواید دو جم او قايده. خوب این کتاب ایزاه الفواهات دیگه یک بحثه، یک کتاب فقیس سوال میخوایم ببینیم ایشان تلاشش چیه در مورد قايده. ایشانم میفرمایند ول قواید دو جمع او قايده. و وحیه امرون کلی یوبنا علیه غیرو ببینید ما در منطقه قرص کردیم که میگیم مفهوم کلی مفهوم جزی اینجا برای اینکه که ما به گزاره کلی کار داریم تعبیر مفهوم دیگه به کار نرفته گفته شده امرون کلی و وحیه امرون کلی یون یوبنا علیه غیرو یه قیدی یه تعبیر اضافه اینجا آمد که امور دیگری برای این قاعده بنا میشن خب مگر نگفتیم که قاعده اون بناء اساسه خب اساس برای چه چیزی؟ برای یک چیزهای دیگه در تعابیر که بالا به کار بردیم این بود که انتباق در جزیات پیدا میکنه به فضای حال و هوای منطق نزدیک تر بود اینجا در این تعبیر به این نزدیک میشیم که خب حالا مگه نمیگیم اساسه چه چیزی بر او بنا میشه؟ اون بحث دیگه است اما مهم اینه که گفته میشه این یک امر کلی است و امور دیگه بر او بنا میشه. البته شما ممکنه بگید که خب بر امور جزئی هم ممکنه امور دیگه بنا بشه. خب اون یه بحث دیگه است. هر چند یک نکته حاشیه‌ای داریم به عنوان اینکه قاعده میتوانه به نحو اضافی تلقی بشه یعنی یک امری نسبت به اموری قاعده تلقی بشه نسبت به امور دیگه خودش جزئی اونها یعنی اگر یک امر کلیست سوال دایره اون امر کلی چه قدر میتوانه باشه یک فرسخ باشه اگر مکانی حساب کنیم البته ببخشید این میشه شبیه کل و جز صد مستاق داشته باشه یا هزار مستاق یه قاعده ممکنه صد مستاق داشته باشه هرچند میتونه پذیرای مسادیق ممکنه دیگه هم باشه اما به صورت بلفل صد مستاق داره یا اینکه این, این حالا کار نداریم نکته اساسیش اینه که از جهت محتوایی نسبت به یه سری از امور دیگه میتونه محدودتر باشه پس اینجا که ما میگیم هی امرن کلین یبن علیه غیرو این رو میتونیم به صورت اضافی و نسبی در نظر بگیریم یه قاعده ای شامل مواردی باشه که خود اونها نسبت به امور دیگه کلی هستند خب و از این جهت یک امری کلی باشه یک امری کلی تر حالا تعبیر قاعده تر رو که به کار نمیبریم, نمیبریم. ولی بگیم سعه محتوائیش نسبت به یه سری امور که خود اونها قاعده هستن ممکنه بگیم چیه وسیع تره. و یستفاد و حکم غیرهی منه خب در فقه ما الان این قسمت رو داریم اگر میخوای امریک کلی باشه یه چیز دیگه باید بر اون بنا بشه خب به چه نهف بنا بشه و یه استفاد و حکم غیرهیمن حکمش بر اساس اون قاعده مستمبت بشه استفاده و استخراج بشه فهیه کل کلی لجزیاته اینجا الان دارن تشبیه میکنن نمیگن خودش کلیه میگن کل کلیه لجزیاته ول اصل لفروه یه اصلی نسبت به فروش خب و هو المراد من قول هم فی تعریف علم الاصول ما میخوایم قاعده فقهی بگیم اینجا الان یه جایی این تعبیر الان در تعبیر مرحوم فخر المحققین داره نزدیک میشه به یک بحث دیگه خب به چی این گفت استفاده میشه یستفاد جناب آی اندریم این کتاب قواعد اصول فقه که بود هفته هشته تا قاعده اصولی رو آورده بحث کرده ما به اونو کار نداریم این مقدمش رو ساده اینجا آوردن این کتاب زیر نظر آیت الله مؤمن به نگارش آمده و ترسط یک تیمی و حوال علم و بالقواعد علم و مهده لستنباتل احکام شرعی الفریه خب الان این یک تعبیر تعریف علم اصول گفته علم به قوعدد است که زمین ساز تمهیدگر و زمین ساز استبط احکام شرعی فری است این قوائد زمین ساز استبطه پس این قواعد یک نقشی داره یک کاربوردی داره و اون کاربورد اینه که استنبات احکام شرع فری رو زمینه سازی میکنه این در تعریف علم وصولی یا, دیگر، یا تعریف دیگر گفته شده بل بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الكليه الالهيه شما نگيد الان به اصول ما چیکار کردیم چون که یه نیازی داریم دوباره بخوایم پرداخت تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقیه نکته مهمیه خب در علم اصول میبینیم یه قواعدی هست این تعریف اول ممهد استنباط احکام شرعی فرعی است اینجا باید علم بهش پیدا کنیم اون میشه تعریف علم اصول طبق یک تعریف تعبیر دیگه این که العلم بالقواعد علتی تقا و بنفسا فی طریق استنباد اون گفت زمین سازه ممهده اینجا میگه که این قواعد در طریق استنباد احکام شرعی قرار خواهد گرفت احکام شرعی که کلی هستند خب پس الان اینجا ما یه نوع، یه مسادقی داریم احکام شرعی کلی یک قواعدی داریم خب اون احکام شرعی اگر قرار کلی باشه باید ببینیم آیا اونها قاعده هستن خب اونا مثلا قرار قواعدی باشن یا بخشی از اونا قواعد باشه پس یه سری قواعد داریم که راه میشه برای طریق میشه خود اونها طریق هستند برای استنباط احکام کلی مرحوم سید میر علی در حاشیه و قوانین این تعبیر را داد القائده عباره کلیه من جلد کتاب رو هم خدمت شما نشان بدم این گویا انتقالش سخت شد پس اینجا مرهون سید میرالی فرمودن در هاشی و القاعده القاها ابرارهون ان قضیت کلیه ی قضیه و گزاری کلیه یو منها ها احکام و جزئیات موضوع آموزوها یه گذاره کلیست یه قضیه کلیست که از این قضیه کلیه احکام جزئیات موضوع آتش به دست میام یعنی این قضیه کلی یک موضوع داره یک محمول داره اون موضوع منطبق میشه بر مسادیق متعدد اون مسادیق میگیم جزئیات جزئیات موضوع یعنی چی؟ یعنی مسادیق اون موضوع کلی اون موضوع کلیه دیگه رفتیم که اون کلیه یعنی موضوع کلی داره خب اون موضوع کلی مصادیقی داره که به اون مصادیق ما میگیم جزئیات پس جزئیات موضوع یعنی مصادیق اون موضوع در اون قضیه خب خود اون قضیه کلیه موضوع داشت یه محمول دسته یه حکمی از دل اون در می آمد اون حکمی که ما در اون قضیه داریم نسبت داده شده از طریق نسبت موجود در قضیه نسبت داده شده به اون موضوع خب وقتی به اون موضوع که کلیست این, این حکم نسبت داده شده این حکم بر اون مسادیق داره منطبق میشه از طریق ما موضوع داریم محمول داریم نسبت داریم شما میگید که مثلا الخمر نجسون خب این به کلی خمر نسبت داده شده اینجا صدق میکنه بر تک تک مسادیق اون موضوع به تعبیر دیگه صدق میکنه بر جزئیات اون موضوع اس اون حکم کلی به اون مصادیق نسبت داده میشه و اون احکامشون احکام که در واقع یکیه پس القاعده عبارتون انقضیت کلیه یعرف و منها احکام و جزئیات موضوع ها و قد زهرم مم مذکر فی مفهوم اللغوی ول اصطلاحی اینجا الان یک تعبیری به کار رفته اون چیه مفهوم ضابطه گفتن که اولا ان زابطه و القائده به حسب الاصطلاح مترادفتان لهم لهما مفهوم واحد خب بعضی تعبیر به زابط کردن در مصباح المنیر گفت که قبلا آوردیم اینجا کما سر ربی فی المصباح حيث و القائده فی الاصطلاح به معنی زابط قاعده و زابطه بعدم گفته که این زابط هم یه امر کلیه در المنجه دو اینو هم آورد خب اینجا من اشاره بکنم این در مفهوم لغوی مثل والمانی رو برد اما معمولاً در فضای فقه و اصول این به کار نمیده بعد اشاره خواهیم کرد که یه اصطلاع جدیدی هم بعضی از اهل سنت من دیدم به کار بردن وقتی قایده رو بعدی توضیح بدیم در کلیت فقه کجاست به بعضی از قواعد به بعضی نه همش گفته شده یه اسطلاحی درست شده به عنوان زابطه که لوزون هم خیلی به معنای اسطلاحی رایج نشده هرچند ممکنه اون اسطلاحی مقداری با ذهن هم سازگاری داشته باشه به بعضی از اون زوابیتی که اختصاص به بخشی از فقد داره به یه باب داره بگن زابطه به قواعد عامتر بگن قاعده اما الان ایشان مد نظرش اون نیست چون که در کتاب لغت آمده ایشان زابطه و قاعده رو گفتن خب الان به حسب الاسطلاه مترادفند ولی دیدیم که در کتاب مصباح مونیر بود لزوما این برنایه چیز نیست اون کتاب المنجد هم گفته حیثقال و, و فل اسطلاع طدلق علال اصل و القانون و ضابط و تو عرف به ناعمرون کلی خب کتاب المنجد و اینا که مئیار ما نیست پس این نکته اول نکته مهم بعد اینه که انل وسانیان انل المات فلقاده ح کاون ام، ها مرن کلیان یا طبق ال تصادیق متعدده این نکته که گفتیم مهم معار مناط در قایده بودن اینه که یک امر کلی باشه هو کاون ها کلیان بعد اگر کلی بود بر مسدیق و به تعبیر که در لابلا تعریف بود بر مسادیق متعدد منطبق بشه و یه تفر علیه ها فروات متفاوته حالا این بحث فروات کار نداریم ولا فرق فیزال که بین کانها جاریتن فی بابن واحد او ابوابن متعدده فلقا خب اینو الان کار داریم باش این نکتر رو که آیا درسته یا نه فلقاعدت الفقیه مثلا تعمم اون ملقاعدت به بابن واحد من الفق و ما تشيمن ابواب متعدده فضلا جریان ها فی تمام ها خب الان از جهت مفهومی این مفهوم قاعده رو ما گفتیم که امر کلیه این حرف درستی اما اگر بیایم بررسی کنیم ببینیم موارد قواعد چگونه است اینجا یه مسئله پیش می آیا همه اینا قاعده هستن؟ بله طبق این تعریفی که مطرح کردیم قاعده هستن همین که یک امر کلی باشه و مصادیق متعدد داشته باشه کافیه برای اینکه که بگیم در فضای فقه بگیم قاعده است حالا چه در یک باب باشه؟ چه در چند باب؟ حالا ایشان از این نتیجه می گیرن ازن فقط تفرقه بین القسمان و تصمیت الاول به ذابطه تصمیت اول یعنی چی این که گفتن فی کونه ها جاریتیم فی باب واحد اگر در یه واب باشه ما اسمشه بذاریم زابطه اگر در ابواب متعدد باشه و ثانی بالقاعده اصطلاحون مستهدسون غیر موافقین لماستول ها علیه فی الاسول و الفق ایشان است... استنکاف فرمودن از پذیرش این که ها اگر در یه باب بود ما بگیم ظابطه در افواق متعدد بگیم قاعده البته بالا توضیح خوبی نیاوردن نگفتن که حالا درست کلی گفتن در اسطلاح ولی مستندشون مثلا به المنجد و المسباح المونیر بودن. المسباح المونیر اگر بگن خوشگال نداره اون کتاب لغت معنی لغویشو داره میکنه بعدم داره میگه آقا بنای ضابطه نداره اون بنای ضابطه رو بنای اصطلاحی نگرفته معنی لغوی خودش گرفته که آقا یه معیار میده یه ضابطه میده اینجا در واقع یه خلای وجود داره حالا شلون مد نظرشون نمیدارم دقیقاً چه کسانیست آیا فقط همون یکی دو نفری که از بالا آورده دارن میگن چون تعبیرشون هم گفتم در اصطلاح اما حالا در کتاب فقهی قواعد که در فضای اهل سنت ما داریم خب می‌بینیم که بعضیا خیلی کم هرچند جای علی دوست من دیدم در یه مقاله که داشتن در مورد بحث قوائد این رو پسندیده بودند اما اینکه اصطلاح رایجی باشه اینو داشته باشیم اصطلاح رایج نیست ولی به نظر من اصطلاح خوبیه یعنی ما اگر بخوایم به هر حال تنوع در قوائد داریم خب من برای اینکه که یه مقدار اونس بگیرید یه مقدار کتاب شناسی هم بیشتر بشه خدمت شما کنم به این بحث کتاب معخص شناسی قواعد فقهی که فکر کنم جلوترم ما معرفیش کرده بودیم این رو خدمت شما به مورد اشاره قرار میدیم به عنوان نمونه این کتاب معخص شناسی قواعد فقهی کتاب در واقع دایره المعارفی کتاب نمایس آدرس غیر از حالا بحث مقدماتش که بحثای خوبی داره ما در فضای ببخشی چند لحظه این کتاب دو تا چاپ داره چاپ اولش در این نرمفضار قبلی فقه که من معمولا استفاده می کنم شما آشنایی دارید در این وجود داره این نسخه دو جامعه فقه احلاویت دو اونتا بعد از این هم یک چاپ دیگه داره که اگر خواستید استفاده بفرمایید فرمایید برای مرخص شناسی اون کامل تره چند نوع تبویبش رو یه تغییری دادند خب این کتاب هم الان یک معرفی داره خب مشابه همین بحث است حالا بعضی مواردی که از تعاریف که ما اووردیم رو هم اینجا داره و طبیعتاً کتاب های دیگر هم معمولا استفاده میکنه. از این آقاین معاصر آیه آقای محمد اسحاق فیاز که از شاگردان آی طول خوییه و به عنوان مرجع معاصر هستند در فضای نجف این تعبیر انها قواه طرفی طریق استفاده در احکام شرعیه الالهیه خب این رو حالا داریم در تعاریف. نکته دیگه هم داریم بعد اجمالا خواستیم این سرفصل این کتاب رو شما در نظر بگیرید قواعد که خواستیم مراجعه بفرمایید این یک نمونه من خدمت شما حالا ببینید این یک مجموعه که خوب است این کتاب رو ملاحظه بفرمایید در کتب دیگه هم که ما داریم مجموعه کتب قوائدی خیلی داریم بعضی از مواردی که در فضای اهل تسنن وجود داره ما شما می توانید استفاده بکنید کتاب های زیادی هست در فضای اهل سنت که کتاب های اونها به ارحال به طبع کسرت جمعیتشون خیلی زیاد هست خدمت شما عرض کنم شما نمونه های مختلفی می‌بینید. حتی ما دانشنامه قواعد فقهی رو داریم که بعضی افراد کار کردن اگر من سریع بشه بازش بکنم برای شما خب یک نکته اساسی این است که ما چه تلقی از قواعد فقهی در فضای شیعه داریم و فضای سنی آیا این همانی وجود داره؟ فل جمله می‌بینیم. من سؤال بکنم نمونه این کتاب موسوعه القواعد الفقیه رو باز می‌کنم خدمت شما. اگر دستگاه ما دچار مشکل نشه قواعد فقهی که ما داریم فیل جمله در فضای شیعه و سنی مشابهت داره از این جهت شما اون تفاوت ها رو اگر بخواید ببینید تو این قسمت تعریف و تلقیه عمده شاید چندان نیستش حالا این کتاب رو که به عنوان موضوع قواعد هست ما میاریم شما ببینید اینجا یازه بده متن رو تعریف قوائد خب کتب قوائد خیلی زیادی هم در فضای اهل سنت هست دوستان تا من این متن قسمت مربوط رو برای شما مش پیدا کنم صلواتی رحمت بفرمايد الله صلي على محمد و آل محمد خب ببینید الان در این کتاب موسوعه قواعد فقهی که ده جلده کتابی خیلی زیادی داریم خیلی از اینا طبیعتا مشابه الان اینجا بینگه دوستان مد رو قاعدتان باید ببینن القواعد دو جمع قاعده و معن القاعده اصل الاس و اساس البنا و القواعد و الاساس و قواعد و البعت اساسو و منه قول و تالا و ازیرف و ابراهیم القواعد من البعت و اسماعیل ربنا تقبل مننا یا تعبیر دیگه ساعت الله و نه من القاعده زجاج میگه القائ و اساطین بنالتتی تم اینو ارز کنم چون که علمای اهل سنت خیلی زیادن و کتاب های بسیار زیادی دارن از قدیم هم داشتن طبیعتا شما می‌بینید که و خواهید دید که ارجاعات این ها زیاد است و معمولا در کتاب های معاصر اهل سنت که مقدر جنبه دانشگاهی هم دارن ارجاع و نقل قول فراوانه از یه جهت این بازگشت به, به این تنوع خودش اهمیت داره از این جهت هم که شناخسائیه و شناخت فوقه ها و سولیون و دیگر علماء اهل سنت رو برای شما به طور زمنی میاره خوبه اما تو بحث محتوای اینا خب طبیعتا مبانی شیعه و سنی تو هر بحث متفاوت هست بلکه مبانی خود اهل سنت هم همینطور اون یه بحث دیگه است ولی این که الان در این تعاریف بینید که به عنوان نمونه به افراد مختلفی توسط میشه از زدجاج میال قوادی دو اساتین و البنا علتی و قوادی الهودج خشبات و نربع زفی اصفل ترک کبو ایدان و فیها ابو عبادی که معنی نمی کنیم. این تمثیل دیگه کرده به خلاصه حودج و پایه های چهار پایش پایه های اطرافش ابو عبادی گفته قواعد و صحاب اصولها الموتر زفی آفاق سما این برده در آسمان آفاق سما شب بهت به قواعد البنا ابن اسیر گفته اراده بالقواعد معطور زمنها و صوف لیال نمیم چی بخونیم تشبیهن به قواه دل بنا در روایت هم بردن خب این تنوع زیادی دیده هست در کتب لغت و کتب دیگه اینجا اون معنای زابط و من معان القاعده فل لغت زابط یعن طبقه الا جزئیاته که موارد دیگه هست اینجا از کنزل او مال اگر ببخشید از بله کنزل این پاورقی سه از ماجم وسیط رو برده خب این هم کتب لغت بعد همین تبیری که ما در فضای فقشی اووردیم مشابهش هم هست اما یک نکتهی قبلش می و اما معنال قاد فلست فقی فقط اختلاف فقاه فی تعیف ها بنان ال اختلاف آن فی مفومه هاحلیه قضیتتون کلیه او قضیتون اغلبیه. این یه بحثش برمیگردید روش شناسی استمب که اگر و یکی این که تعریف اصطلاحی در فضای اهل سنت یه ویژگی داره که جدا باید ارز کنیم که در واقع به خاطر کمبود محتوا رفتن سراغ تعمیم بعضی از قضایی ها اما تعمیمش به چند دازه به نفر کلی صد درصدی یا اغلبی این الان اشاره به اون داره که بعضی از قواعد رو که اینا تأسیس کردن اغلبیه نه قضیه کلی لذا این سوال مطرح شده برشون که آیا قضیه کلیه است یا قضیه اغلبی خب بعضی تعریفی هم که کردن شبیه تعریف ماست قضیه تون کلیه منطبقتون علا جمعی جزیات ها این جورجانی اوورده در تعریفاتش خب این کتاب تعریفات جورجانی مشهوره بعضی از این علمای ما هم که اووردن این تعبیر عرض کردم در فضای منطق و اینا به اونجا هم میخوره یا این تا... کتاب تعریفات از قبل این اشتراک که در مفاهیم و اصطلاعات جمله یه جایی پررنگه از جمله اینجا قضیهتون کلیه یا تعرف منها یا تعرف منها احکام و جزئیاتها اینه المحلا ورده الا جمع الجوامه خب این المحلا ابن حزم اندلسیه که از ز... ظاهری هاست مذهب پنجم اونها یه مکتب خاصی دارن اونجا هم وجود داره از که یکی از کتاب مشهور در فضای اصولی سنی ها على توضیل تفازانیم این هم با شبیه نوورده حکمون کلیون ی طبق ال جمعی جزئیات ایلی تععرفم تععرفف احاکام ها من دوباره تعریف دیگه که کتابه رو یه بار ببینید در پا برقی منافو دقائق ما کم تر شد مشهوره عشباه ابن سبکی یا سبکی اگه بخواییم این مشهوره کشف القنال البحوتی مشهوره شرحل کاوکبل مونیر مشهوره مال ابن نجار همبلی این سلیمان این توفی هم مشهوره شهر مختصر روزه و بعضی کتاب دیگه این مال احمد زرقا، احمد خلال فقه الام اینو جدیده یا تاریخ الفقه اسلامی اینو دیگه جدیده ببینید انواع تعریفی که آوردن محتوى تقریبا شبیه همه یکیش گفته حکم کلی یا یعن طبق علا جمعی جزیاتهی لیتعرف به احکام الجزیات ولتی تندرش تحت من الحکم کلی این ها همه تعبیر دیگه الامرون کلی و لد یعن طبق علیه جزئیاتون کسی توف هم احکام آمن به جای استنباد گفته هم اونجا تعرف به کار برده یکی دیگه امرون کلی و منطبق علیه جزئیات موضوعهی یکی دیگه گفته عبارتون ان برین کلی تن طبق کل واحدت منها علیه جزئیات علیتی تحتها یکی دیگه گفته هی القضا یا الکلی اللتی تو رفع به نظر فیها قضايا جزئیه قضایای جزئی از اون فهمیده میشه اینم تعبیر زیبایه که به از این قضیه کلیه وقتی انطباق پیدا میکنه یک اون تعبیری که داشتیم احکامش فهمیده میشه اینجا میگه که خب احکام فهمیده میشه یعنی اینکه از دل این قضیه کلی قضایای جزئی این هم تعبیر جالبی تا... کسی دیگه قضیتون کلیه یو تعرف ها احکام الجزیات المون درجه تحت موضوع ها. این تأکید میکنه که رب داره به این یه تعبیر دیگه این تعبیر از این تعبیر م... معاصر بود اصولون فقهیه کلیه فی نصوص موجزه دستوریه دستوریه یعنی دستوری قانون اصاسی و قانونیه تتزمن و احکامن تشریعیه آمه فی الحواد سلطی تدخل و تحت موضوع تعبیر ببینی معاصر شده گفته اصول فقی خب حالا اصول فقی خودش یه مقدار جای توضیح داره کایس اطلا خوبیا نه کلی بودنشو گفته مونتا تاکید میکنه بر یک ویژگی سوری که فی نصوص موجزه بله این ویژگی درست معمولا سعی میکنن در قا... قاعده سازان یه تعابیر موجز و بیارن این تعبیر دستوری که میگم یه جوری تاکید بر اون کلی بودنه یعنی جایگاه رسمی خاصی داره که مونتا اون جنبه کلیتش هم توش فل جمله هست و متضمن احکام متشریع عامه است خب حالا اینجا داره میگه یک قوانین کلیه ولی از دلش احکام تشییه عامه میام خب اون بزر... کسای دیگه میگفتن اصول فرعی خب اینجا ممکنه احکام تشریع عامه بیا ممکنه چیه این الان محدودش کرده یه جایی ممکنه احکام مستاقی خاص یا عام نباشه این محدودش کرده یه کسی دیگه آقای شلبی مست... محمد مصطفی شلابی که معاصره این هم اینجور گفته اصول و مباد کلیت توساغ و, و فینوسوس موجزه اینا چون چونگه حقوقی هم دارن و این ویژگی حقوقی و سوری هم کار دارن تتزمن و احکامن تشیه آم مفل حواد سلطی تدخل تحت موضوع خب برنزی مسادق میکنه آم نباشه این رو یه مقداری خارج از بحث بردن خب خودشان هم میکنه آقا اینا با هم شبیه بعد اینجا یه نکته میاره و من نذره پس اینها ناظر به یه قواعد کلی بعد میام میگه که خب آقا بعضیا که گفتن اکثری یه چی مثال میاره از هموی غمز و ایون البسائر شفل اشباه و نزائر تعبیر اشباه و نزائر هم بدانید که در کتاب های قدیمیه به اهل صدنت میگفتن اشباه و نزائر اشباه و نزائر یعنی همون قواعد یک کتاب مشهوریه اشباه و نظائر این حالا یکی از شروع اونه از به اونجا سنات میده حکمون اکثری و لاکولی یعن طبق اکثر جزیات له تو احکام و من خب اینجا این بندی خدا آمده محدودش کرده به اکثر موارد خب اگه این باشه یه مقداری اون نگاه دیگه یه مسئله کلیدی داریم که خب آقا اگر به هشتاد مورد داره تطویق میکنه به مورد هشتاد کمین مورد نو دومی مورد صدو میخواد تطبیق بکنه تطبیق پذیره یا نه از کجا رو شما در میارید خب این دیگه میقدر به اون روش شناسی و به های استنباط قواعد برمیگرده در تهذیب الفروغ هم گفته اکثر و من المعلوم ان اکثر قواعد الفقه اغلبیاتون خب این دیگه برمیگرده به عالم اهل سنت که فل جمله ریشش چیه این استقراء چون اینا رفتن سراغ استقراء و تعمیمشون از راه استقراء خیلی جاها این به این نتیجه رسیدن که اغلبی خود اینجا هم حالا توضیح میده خب با این بحث دیگه کار نداریم خب کتاب های دیگه هم داریم تو فضای شیعه و سنی. فعلا با اینها کاری نداریم برگردیم این کتاب مخص شناسی یک نکته قبل از یه بحثی هم داریم قاعد فرق قاعده اصولی و فقهی اینا رو میگیم اینجا هم این فرق قاعده و زابطه رو اینجا هم ایشان رو این رو هم در نظر بگیریم که بحث تکمیل میشه ایشان میگن که زابطه داره دو استلاحه یکی برناه ملاک و میار که جا به کار میبریم در گناه سقیره گناه کبیره و هر جای دیگه آقا زابطه چیه؟ ایشان گفته که ثابت به این معنای ربطی به قاعده فقهی نداره. معنای دومش چرا؟ که یک جنبه کلی داره مثل ثابت و مایشتره تو فی امام صلات کمالی و ایمانی و ادالتی و سایر موارد. خب ایشان اینجا چی نتیجه گرفته؟ گفته که بنا بر این ثابت فقهی اختصاص به یک باب دارد. به خلاف قاعده که اعم بود و چند دین باب رو شامل میشه حالا ببینید اینجا الان پاورقی و این متر رو ببینید یه کتاب عبدالغنی عن نابلوسی کشف الحضائر هم ان الاشوای و نظاره خب پس پاورقی داره خودش داره میگه که این کتاب کتاب این اصطلاح سنیه ابن نجیم این از این آین متاخریه که اگر اشتباه نکنم از آقاین هنابله از وادم مشهوریه یه مقداری خیلی هم دیگه متأخر نیست اینم هم آمده گفته الفرق و بین زابط و القاعده انل قاعده تجمه و فروان منعبابن شتا و زابط یجمه ها منبابن واحد یه مقدار پس این رو میشه بگیریم که آقا یه کمی این افن نجیم باشه یا نجیم باشه این یه مقدار آدم جا افتاده ایه درال استلاح از یه جای شروع برد بشه حالا افراد قبل هم می توانیم پیدا کنیم ولی فل جمله اگر تو فضای اهل سنت بریم اگر یه آدم برجسته ای تعبیر رو به کار ببره می توانیم بگیم تقریبا زمینه اصطلاح شدن درش هست خب آقا این دیگه بعضش از این جدیدیا هستن یا مثلا المنجد و بعضی کتابهای دیگه که اینا نمی توانند معیار برای ما باشند ولی می توانیم بگیم که مثلا ابن نجیم یا ابن نوجن این میتوانه یه مقداری نشان بده که خوبه این آقای عبدالغنیان نابلوسی به نظرم از همین حالا اسم کتابش یه مقدار شبیه اسم کتابای قدیمه الان خواهد نمیدونم من برخورد نداشتم که ببینم حالا چه سالی هست و اینا اگر نه تق... علمای جاافتاده افتاده به کار ببرند تقریبا میشه بگیم که یک اصطلاح است خب این بحث رو به خاتمه میدیم با یک صلوات و بسم اللهی بحث دوم رو شروع می‌کنم اللهم صل علی محمد و آل محمد